بسم الله الرحمن الرحیم جلسه 27 حف... جلسه 27م از بحث قواعد فقه محسی و سیاست و حکومت موسسه آموزش عالی امام رضا علیه السلام هفته 17 <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا اب القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیات الله فی العرضین روحی و ارواق کلا اولا له الفدا با استانت از خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت طهار علیهم بحث خودمون رو ادامه میدیم ما یک بحثی به عنوان تضاد چارچوب و شاکله ولایت بندیم داشتیم ارائه می کردیم که بر اساس یک الگو که جای نقد و بررسی جدی داره ولی یه تلاشیه که یه کمی نشان میده ما باید چهگونه الگو پردازی بکنیم این هم به اون یک سبک که ما اومدیم گفتیم در سه دست مسله و مسله با هم تظامم کنن چه ضوابطی دارن اگر مفاسد و مفاسد چه تظام تز... کنن چه ضواابتی دارن اگر مساله و مفاسد با هم تضاهم چه زابطه دارن اینکه که سگانه ای داشته باشیم یک نکته که اهمیت کلیدی داره و بحث رو منظم میکنه اما این تنها الگو نیست. بلگوی دیگه این بود که ما چه کار کنیم بگیم که در مشی شیعی امدتن این طور بود و تضاهم بین واجب و واجب تضاهم حرام و حرام و تضاهم واجب و حرام رو ما در نظر بگیریم حالا تضاهم واجب و مستحب با مکروه اینا دیگه اسمش رو تضاهم معلوم و نمی بزرن. خب پس یک چارچوب ای در واقع اولگوی حکمهور رو ما مورد اشاره قرار دادیم خب از اون بر الگوی مسلحت محورم که مورد اشاره قرار دادیم این یک ظابطه کلی یعنی اگر شما و ممکنه شما الان احساس کنید این الگوی ساده ایه. اما وقتی که میخواید تطبیقش کنید به این راحتی نیست مخصوصا اگر میخواید الگو رو تکمیل کنید با بیاناتی که ما از بزرگان مثل مرحوم ناینی و دیگر بزرگاران مطرح کردیم در انواع ت خب بس شوق بیشتری بهم پیدا میکنه تضامن چه نوع حکمی حکم از یه طرف حکم تکلیفی داریم از اون طرف حکم وضعی و به ویژه حقوق داریم خب ما تضامن بین حقوق هم داریم اگر در نرمخزاره سرش بکنید گایی قد اجتماع حقوق تضامن حقوق اینها هم میتوانه مطرح بشه و دیگر الگوهایی که لابلای کار ما اشاره کردیم یک امری مقدم است برای زهل مقدمه یک امر حرامی است مقدمه بشه مثلا برای واجب و دیگر تقسیماتی که ما ذکر کردیم پس خود این که در این سطح ما الگو پردازی کنیم اهمیت کلیدی داره بعد آمدیم یک سیری رو از آقای عبدال... عبدالمجید از سوسوه مطرح کردیم که نسبت به دیگران خیلی منظم تر آمده ارائه بحث داده دیگران اینا رو شروع خلوخ میارن نظمی بینشون نیست منطقه این نظم خودش این نظم هفتگانه که در هر کدوم از اون تضاهم بین افاسد و مساله و اینا بود جای تحمل داشت اشان آمدن یک سیری دادن که اول کدام مقدمه در میان مسلحت و مسلحت اونی که احلا مسلحتن حکمنه در میان دو مفصده باز احلا المفصدت این حکمن در میان مفصده و مسلحت هم باز احلای اینها حکمن پس احلا بودن در حکم یعنی چی؟ یعنی همین الگوی که ما گفتیم الگوی حکمیه بعد که آنها پس یک نقدی که ما اونجا مطرح کردیم در واقع نقد اولگیا آقای سوسو از منظرهای مختلف بود یکی اینکه در واقع از داشت در نسبت در جایگاه احکام و مسائل و مفاسد یعنی آقای این دو تا یا مثلا باید با هم مقایسه کنیم یا در کارشان احکام صدر کار قرار گرفت خب سوال این چرا میگیم استراب داره؟ چون که احکام مبتنی بر مسئله و مفاسدن اگر این ها مبتنی بر مسئله و مفاسدن در واقع تکیه احکام بر مسائل و مفاسد خب یعنی چی؟ یعنی بقیه اون شش امر دیگه از سنخ مثلت مفسدن این سنخ احکامه خب و این در واقع تق... یه نوع مواجهه بگیم استرابامیز و دوگانه داشت با خلاصه این دو معقوله آیا اینها موازی همن یا در طول همن در واقع مسائل و مفاسد رتبتا مقدمن بر خلاصه احکام دارند. تقدم رتبی مسائل و مفاسد بر احکام یه تأثیری باید باشه یه اقتضایی داره اگر میخواد مسائل و مفاسد رو با هم مقایسه کنید در عالم سبوت این مسائل و مفاسد سبوتی و پیش از حکم تقدم دارن مراد شما کدامه؟ آیا مساله و مفاسد سبوتی مراد شماست؟ خب طبیعتاً مساله و که در نظر میگیرن همونی که متردد بر افعال میشه و طبیعتا مورد نظر شاره این یه اختلالی تو مرتبه اول داشت یک اختلال دیگه یک ابهام دیگه که داشت عدم اثبات در واقع این تقدم رتبی بود در واقع اول شماره زابطه شماره یک بعد دوم بعد سوم فقط طرح کرد عدم اثبات در واقع ترتیب میان زوابت هفتگانه وقتی که میگیم عدم اثبات معنیش این نیست که کلا این ترتیب رو نفی می‌کنی اما این ترتیب هفتگانه به هر حال جای اثبات داره به چه دلیل اول به چه دلیل دوم هرچند خود این در واقع ترتیب حسن داشت در واقع این سر جای خودش مهم بعد نکته که اشان مطرح کردن دوگان البته این شیبه شانم جای تعمل و اقبال و پذیرش و اجمالا تحسین داره قلقوی سوسوفه یه عباد مثبتی داره در واقع تلاش برای نظم بخشی داشت این سر خودش این خیلی خوب بود اینکه ترتیب رو پیدا کنه و در واقع شناسایی ترتیب بین زوابد اهمیت کلیدی داره این خیلی خوبه اما ایرادم داره خب اینکه یه حسن دیگه که داشت اینکه آمد چه کار کرد گفتش ها رو مساوی گرفت در واقع رفتن به مرتبه بعد ترتیب در واقع حرکت بین زوابط یه زوابط بهش داد زوابط گذاری برای خود برای خود حرکت بین زوابط هفتگانه اون چی بود؟ اون این که فرض تساوی در مورد قبل مختزی رفتن به مرتبه بعده به زابطه بعده خب این خودش خوبه اما همین جا که دوستانم سر این یک نکتهی داشتن و اون چی بود این حرف درست که آقا این در عالم خارج یک مشکلی ما داریم اون مشکل چیه این که عدم امکانه خلاصه ساده سازی در واقع اینطوری بگیم ساده سازی واقعیت بیرونی به چه معنا این ضعفش بود درسته اینی که خودش یه زابطه داد خدمه شما مرز کنم زابطه داد که شما اگر این زابطه قبل دو طرف ترجیح نداشتند یکی و دیگری دی مرجح نبود ترجیح نداشت برو سراغ زابطه بعد خود این خوب بود زابطه ما مطابقه با واقع نبود در اصل ایم زابطه مطابقه با واقع در اصل نبوده نه, نه. روز اومن نمیگیم نگیم یه تحبیر یه رو شاید اصلاح بکنیم بدونی که مراد شما رو حذف بکنیم این که واقعیت بیرونی رو لحاظ بکنید ولی سادش نکنید یعنی در واقعیت بیرونی شما اگر ساده سازی بکنید این ضرور جدیه واقعیت بیرونی به این راحتی نمیشه خلاصه موارد مسافی رو پیدا کرد خیلی جه در واقعی اینطوره واقعیت بیرونی این که در واقع ترجیح ترجیح تو امان چی بگیم ترجیح تو امان از حیثیت های مختلف اینجور نبود که فقط از یه طرف مرجع باشه از اون طرف مساوی باشه یعنی همین که در واقع این نبود که فقط یک ترجیح باشه، امکان وجود ترجیحات از حیث های مختلف. خود این پس یه تکیسیتی نیستن مواردی که وجود داشت در واقع بگیم چند حیسیتی حیسی بودنتی چند بودن چندیسی بودن موارد خارجی. پس شما فرض می گرفتید که یک مورد هست یا طرف الف ترجیح داره یا به یا مساوی فرض ثومی هم هست فرض چهارمی هم هست در واقع تعدد ترجیحات در عالم واقع البته اینم می توانیم بهشون یه حقی بدیم اگر ایشان اثبات میکرد که مثلا زابطه سوم واقعاً واقعا باید سوم باشه زابطه چهارم چهارم باشه این تعدد در رو کنار میذاشته اگر در واقع در بیرون از حیث های مختلف یکی مثلا از حیث الف مخ... ترجیح داره اون طرف دوم از حیث ب ترجیح دارن ولی واقعا اگر اثبات بکنه نه فقط ادعا بکنه در واقع تعدد ترجیحات در عالم واقع مشکلش کجا است؟ مشکلش از این جهتی که شما اثبات نکردی باید اینو مقدم کنی فقط گفتی آقای مقدمه بدون اثبات تقدم رتبی یکی از ترجیحات ممکنه شما بگید ایب نداره این دو حیثیتی هست در بیرون ولی من اثبات میکنم حیثیت علف ردبتاً مقدمه ولو اینکه که بهم خودش یک وچه ترجیح بر اون طرف بفرمایید بفرماید یه شفافتر آی نرزی صدای کمی تیره و تار شد دوباره تکرار رو فرماید صدا من صدای شمار دارم یعنی میخوام عرض کنم که دوباره تکرار میکنم یک جایی ببینید الان ما یک مشکلی که گفتیم اینکه اضطراب در جایگاه احکام اون برای مورد یک بود زابطه یک. اما این حفظ زابطه رو شما باید اثبات ترتیب بکنید اثبات نکردید فقط اکتفا به ادعای ترتیب کردید یا بگیم فوقش ارجاع به وجدان یا فهم خلاصه همسو کردند ایشان میگم آقا شما مشکل سومی که دارید دارید واقعیت بیرون ساده سازی میکنید ساده سازی یعنی چی؟ یعنی آمدید دو حالت سه حالت بیشتر خلاصه فرض نگرفتید در واقع فرض محدود ترجیح یک طرف بر طرف دوم این یه فرض بود مورد دوم ترجیح طرف دوم بر طرف اول فرض سوم تساوی فقط سه حالت محدودیت فروز در سه حالت خب آیا صورت های دیگه نیست امکان این وجود داره شما سه حالتش کردید حالت های چهارم حالت های بعدی چیه فرض های دیگه چیه فرض های دیگر اینه که خود این طرف اول از یه ترجیح داره بر حیث دوم اونم از یه دیگه پس این الان یه مسئله مهمه ترجیح یکی از هر کدام بگیم هر کدام از دو طرف از یک حیث این شد فرض سوم چهارم تو حالت اول فقط میگفتید که شما ترجیح طرف اول تو فرض دومم میگفتید که طرف دوم ترجیح داره فرض سوم هم تصاوی بود خب این که محدود نیست فرض پیچیده تری هم وجود داره فرض های دیگه طرف علف مرجوه از یه حس از یه حیست دیگه ترجیح داره مرجحه طرف دوم هم همینطور حالا دیگه فرض های پیچیده تر ممکنه ترجیح از دو هست باشه ترجیح یک طرف از چند هست خب حالا آیا به خودی خود این دو های رقیب اینا مشکل دارن نه اگر شما عدم این رو اثبات نکنید. اگر اثبات بکنید که یکی رتبه مقدمه، اینجا مشکل حل میشه. بدون اثبات من باز یه جای تکرار میکنم که مشکل صوتی اگر احیانا واقع نشود انشالله ارتباط بازی‌کم درست باشه این بزرگوار سه تا فرض گرفت ترجیح طرف اول بر دوم ترجیح طرف دوم بر طرف اول فرض سوم تساوی تو اون دو تای اول یه حیثیتی دیده بود اما های دیگه می توانیم داشته باشیم که هر دو طرف یه بچه ترجیح داشته باشد. یه بلکه یه طرف چند حیصیتی باشه. یا حتی بگیم بالاتر بگیم ترجیح چند حیصیتی دو طرف بینم میتونه باشه. یا حتی ترجیح یا بلکه تضاهم بین سه تا تضاهم چند مورد فقط دو مورد هم نگیریم مون تا همه این فرضهای دیگه در یه صورته یه قیدی داره اگر اثبات تقدم رتبی یکی از اون هفت رو بکنید دو تا از اون‌ها سه تا چهار تا شش تا بکنید اب نداره ممکنه طرف دوم از حیثیت دوم و سوم برخوردار باشه از اون حیث ترجیح داشته باشه ولی جاش متاخر باشه پس اگر اثبات نکنید مشکل داره بدون اثباتم تقدم رتبیم هر کدام از دوابت یعنی اون ادعایی که شما گرفتید ادعاست اگه برای ما اثبات کردید یا ما شما هم لازم نیست اثبات کنید اگه ما ما نمیخوایم شما مخالفت کنیم اگر با خودمون ترجیح رتبی هر کدوم از اینا رو پیدا کردیم اون مرتبه دوم سوم یه رتبی هم داشته با اون کار نداریم اونجا گفتیم ظابطه دوم اعلا ما رتبتن بود منظوم اون نیستا خب حالا پس این نکته که دوستان جلسه قبل هم میفرمودند الان من یه مقداری همسوی دارم نشان میدم خودم هم این ایراد رو داشتم که آقا فرض منطقی با این بیاد دوستان اینطور نمیگفتن کلیتر میگفتن من این رو سعی کردم روشندترش کنم دوستان میفرمودن که آقا همش اینجوری نیست منم به این تعبیر رو بکار میم آقا واقعیت بیرونی رو یکی دارید ساده میکنید یکی دارید در واقع همه فرض ها رو نمیگیرید محدود انگاری واقعیت بیرونی در سویت که فرض های محتمل دیگر هم هست خب ولی اون فرض های محتمل رو ما کامل نمیذاریم سر این تر میگیم اگر زاب اثبات کردید که مثلا فرض کنید طرف اول دو حیثیت داره طرف دوم یک حیثیت ولی اون طرف اول حیثیتاش جاش بعدانه همون یه حیثیت ما ممکنه ترجیح بدیم برای اون دو حیثیت به شرطه که اثبات بکنید جای اون دو ست وچه ترجیح ها اینجا نیست خب حالا این رو اگه میخواییم همراهی بکنیم یه جایش یک کمی روشن همراهی با اون توضیح که جلسه قبل میدادیم مثلا اون قسمت اول حالا اون مشکل حکمن رو بذاریم کنار اعلام ما حکمن بین دو سه یک کمی روشنه میگیم آقا اصلا فرض که بعضی از احکام ضروریه مقصدش ضروریه و در نتیجه بگیم حکمش ضروریه یه مورد ضروری به اون نیست یا بگیم که اگر ضروری نباشه تحبیر عوض کنیم که مستحبات مکراته نیاره بگیم واجب آکد یکیش واجب معمولیه در واقع یه نقد زمنی هم که تو نقد اول ما بود یا بیان اول ما این بود که آقا اگر میگید که یکی تقدم حکمی داره اون تکه احکام بر مسائل یکی از اون بر نگاه کنیم ای ای این رو بعد بگیم بعد برین سر مسئله‌ای که داشت بحث کردیم یکی ای ای این که در واقع امکان ترجیح بین در واقع احکام وجود داره که خودشم قبول داره اما به این معنا امکان ترجیح احکام به لحاظ تفاوت و بگیم شدت مندی و مفاسد یعنی چی یعنی اون حکمی که ما داریم میگیم که مرجحه چرا مرجحه چون که مصلحتش خیلی شدیدتر بوده لذا حکمیشم شدیدتر شده حالا نمیخوام اون به اون نقده اول چون چونکه میخوام این قسمت رو شفاف کنم به این برمیگردم میخوام از کنم که آها شما بیا اون مراتب رو ایجاد کن خب تو حکمن یه جایی میگیم آها این واجب وجودش، اکیده اونه که وجوبش معمولیه خب بله اینجا الان بین این تقدم رتبی وجود داره اما اون به مورد دوم و سوم که میگه اعلاغ ما رتبتن بعد اعلاغ ما نوعنم اینجا یه زنه میشه همسوی نشان بدیم چرا؟ چون که اونجایی که میگه مقصد این مسلحت این رتبش از رتبه ضروریات ضروریات بر حاجیات منطقا مقدمه هر دو واجبن باشه ولی این که عملا این یه مقداری بر ای اولا برمیگرده به اون قبلی در واقع این حالا که فیلن کار نداریم که به اون برمیگرده اما مهم اینی که اون جایی که شما میخواید برگردید در واقع خلاصه تو رتبتن فرض گرفتی دیگه واجبیه ولی سنخ وجوبش از ضروریات به هیچ بچه نمیشون رو رها کرد چرا؟ چون که جان آدم دین انسان آب روی انسان اونها از بین میره اونها مخدوش میشه متوجه ایپ، متوجه اونجا میشه لزام یه موردی که از سنخ حاجیاته یه اذیت میشه آدم به هر میفته خب طبیعتا اگر جان انسان در خطر باشه با اینکه به زحمت میفته مثلا دو تا کار داریم هر دو واجبه ولی رتبه یکی در واقع تو اون سطح ضروریه خب این که معلومه یعنی منطقه اصلا این رتبه ها این مقاصد و به طبعش احکام در واقع این معلومه خب اینجا یعنی چی یعنی اگر یه چیزی سنخش از سنخ ضروریات باشه معلومه که برای حاجات مقدمه حالا شما کار نداری این ادبیات تو فضای شری خیلی پر پیدا نکرده شهید و بعضی افراد محدود اینو به کار بردن اما اکثر علما گذاشتن کنار چرا چون این تکیه بر بحث خلاصه کشف مسائل و مل ملالکات و اینا داره که خود اون یه نقد مستقله که آقا شما در واقع روی کرده مسلحت محور اون مال کل روی کرده مقاصده روی کرده مقاصد محور بحث رو خلاصه از عالم ابراز و حکم شناسی به کشف ملاکات میبره که محدود... اما محدودیت ما محدودیت در کشف داریم شما یه کار عوض دارید میکنید کار دشوار میکنید اون یه بحث دیگه است اما اگر فرض بگیریم که این مساله رو ما میشه بشناسیم مقاصد رو میشه بشناسیم و فرض بگیردن میشه فرض کنیم واقعا که بعضی از مقاصد ضروری بعضی مقاصد حاجی بعضیش مکمل هست اینجا نمیخویم نقد بزنیم ممکن مناقشه سهروی هم بکنید عیب نداره اون امکان مناقشه مناقشه رو کار نداشته باشید ولی الان ما میخواهیم عرض کنیم که اینجا فلج جمله قبول میکنیم منطقا اونی که تقدم رتبی داره اونجا قبوله درسته ترجیح در واقع اونجا منطقا حالا شما اثبات هم منطقش بایشه اونجا که ما گفتیم آقا چرا اثبات نمی‌کنید، اثبات نکردید اینجا ما فل جمله قبول داریم که خلاصه آقا شما که امکان خلاصه ترجیح رو اثبات نکردید اینجا ما همسویی میپذیریم ولو در برخی موارد مثل چی؟ در واقع تقدم رتبی تقدم اونجایی که احلا رتبتنه در, احلا در موارد دیگه این یه مورد رو قبول میکنیم تقدم احلا نوعا اون رو هم قبول میکنیم که میگه آقا نوعش اگه واقعا هر دو جان انسانن خب ما باید بریم ببینیم این انسانه چه تیپیه انسانی در, پی... در حد پیامبره یا انسان معمولیه اگر میگیم حفظ حیوان اون حیوانی که مزره اذیت کننده است موزیه حفظ جان اون مقدمه یا حفظ این جان حیوانی که مفیده خب پس باید بریم سراغ نوعش حالی باز مناقشه می توان کردام ولی فیل جمله ما الان اونجایی که اعلا نوعنه قبول اما اون دعدیا چی؟ بله. همین همین که شاذه فهمید مراجعه مستاد میشه در خودش پیش بیسته که قاعده نمیشه چون مثلا اونطور روایات داریم حتی مثلا یه یه جو حضرت فسه گفت استاد رو قربانی کن یه چیزی رو قربانی کن گفت خب بریم اونجا رو کنیم که مثلا فلان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 بگیم بگیم اگر نوعش مثلا چیز از اون ور مثلا غیر ناصبی باشه غیر مثلا اوبر هاتم میدونید چی میخوام میگم نمی تونیم بگیم الا و بود اگر نوعی بود تعمدی که این تقدم داره نه مناقشه مساقی من این قرار بدین من ضابطه رو یه جوری قرار بدیم که این و برای عاشق شده باشه. ببین مراد من چی بود مناقشه مستاقی گفتم یعنی ممکنه شما بگید آقا این اعلا نوعن این اعلا نوعن یا اون یکی اعلا نوعن منظورم از اون بود ولی این که نگاه کنید الان پس من یاداوری میکنم یکی یکی بریم جلو ببینیم پس الان چارچوب به بحث اول ارز کنم ما الگوی سوسوک رو گفتیم بعد بعضی محاسنش رو هم فل جمله گفتیم بدونی که بخوایم افراد کنیم بگیم آقا اصل که تلاش کرده نظمه ده دست درد نکنه اصل اینکه که تلاش کردی زابط مند بکنی چند تا معیار رو در طول هم بیاری خلاصه اینم خوبه اما تو نقدش، یکی اینکه آقا اون احکام اووردی خب بعدیار هم همش حکمه دیگه. درسته؟ بعدیا که مسلحت دارن خب همه اونم هم حکم دارن. ولی ممکنه ایشان میگفتش که آقا اگه حکمش هر دو واجب باشه. میگیم خب باشه اگه هر دو واجب بود بروس آقا آکد و وجوبن. که اونجا میگفتش که خب من خودم قبول دارم من در فرض تساوی میگم برو سراغیم 6 تا میعار بعدی میگم باشه ولی اونجا اگه تساوی حکمی داره اونجا واقعا اگه تساوی باشه یکیش اصلح نباشه تو قسمت اگر واقعا یکیش اصلح و حکم نباشه شما تخییر باید بگید یا باید بگید ملاک بعدی دیگه تساوی دو حکم واقعا یکیش اكيد نباشه مساوی باشه هر دو واجبی در یک رتبه باشه تساوی دو حکم مقتضی تخییره نرفتن به سمت مسائل و ترجیحات بعدی شما اگه نگفت زابطش این بود که آقا اگه تصاوی بود برو سراغ بعدی ما میگیم آقا شما اگه واقع واقعا تصاویه دیگه نباید پس نتیجه چیه؟ مگر اینکه شما اون میار بعدی رو میارهای بعدی در طول میار اول نباید باشند درسته؟ شما از اونا اینجوری بگی بهتره بگی آقا میار اصلی من در واقع معیار اصلی ترجیح حکمی یا تساوی اگه تساوی حکمی بود واقعا دو تا واجب مست مص... کاملا مساوی باشن دیگه تاخیر دیگه اگر یکیش اندک ترجیحی داشت ما اون رو مقدم می‌کنی بعد می‌پرسیم آقا از کجا میفهمید باید ما سوال کنیم آقا معیارهای ترجیح حکمه میتوانند معیارهای بعدی باشند پس معیار معیار اصلی تفاوت دو حکمه اگه تصاوی بود خب تیگه تخییر دیگه چرا تصاوی داشته باشند بعد شما میگه تخییر نداشته باش اگه میخواد سراغ ملاکهای بعدی برید ملاکهای بعدی معیار ترجیح دو حکم باشند میگیم آقا دو تا حکم واجبند نه ببرشید میگیم دو تا حکم واجبند شما شما یه جوری دلیلش شاهد داره که تصریح کرده دلیل اثباتی دلیل اثباتی گفته آقا دلیل اثباتی فرموده که این یکی تأکید بر شدت خلاصه بگیم شدت وجوبه ترجیح وجوبه یا حرمته خب این میشه تقدیم دیگه حالا ما میگیم آقا دلیل اثباتی مثلا روایی نداریم از دو فرزه در واقع ما میگیم یه بحث اینه که راه های کشف راه های کشف ترجیح میگیم آقا نصوص ترجیح در واقع ترجیحات اثباتی حکمی بگیم در واقع تقدیم احکام سریح میگیم آقا بگیم اولمیات سریح این اون زابطه روشمندی که داشتیم یه جایی آقا دلیل سریحه در واقع سریحه منسوس نداریم میشه چی؟ میشه ترجیحات مستنبت پس یه جایی ترجیح منسوس داریم خوبه ترجیح منسوس ترجیح استنباطی خب حالا میکنیم. آقا این ترجیح استنباطی رو از کجا استنباط کردیم بیاییم و سراغ مرجعات شیشگانه بعدی اگر بتوانیم توانیم اثبات کنیم میکیم آقا یکیش چیه به ترتیب میاییم اعلارتبتن اعلا اعلارتبتن سر رتبه تو بحث مقاصد میکنن از خیلی قدیم ترا از بگیم قبل مثلا غزالی بر آن پر داده ابن تیمیه اینا رو بال پر داده اما قبل از اونها غزالی 606 فوت میکنه ابن تیمیه دیرتر یک دو سه قرن اما جلوتر این داره کسای دیگه دارن میگن آقا مسائل و مقاصد پشتوانه این احکام پشتوانه این احکام سرطوان بعضی از این احکام در حد ضرورتن یعنی مصلحتش مقصدش خیلی ضروریه مثل حفظ جان، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ دین، حفظ عرض، بعضی به جای حفظ عرض میگن، حفظ نسل پنشتا، بعضی شیشتش میکنن، این متأخرین بی سیتاش کردن، بعضی شسفتتاش کردن، حالا کار نداریم اگر واقعا یه موردی به حفظ جان برگرده یه موردی واجبه مورد بعدی هم واجبه ولی وجوبش ناشی از چیه مسلحتش به خاطر چیه میگو ها میخوام شما به در درد سر نیفتی میخوام شما اذیت نشی این رو واجب کردم به خاطر ایگه اذیت نشی واقعا اون حفظ جانه این حالا حفظ اذیت سرم و کدام مقدمه میگیم اون پس اگر واقعا ما این کشف ملاک رو کردیم فهمیدیم مقصدش ضروریه این روش چی شد این ترجیح در واقع یه ترجیح است اولویت سریح بود یه اولویت های استنباطی یه معیار میشه چی؟ ترتیب در واقع بگیم سطمندیه سائتمندی مقاصد و مسائل و مف... حسن وقب چرا اینا رو میگم چون یه تفاوتایی دارن ها. مقاصد یعنی مصلحت مقصوده صرف مصلحت نیست حسن قب هم یه جوری شبیه مصلحت است یعنی عنوان مستقلیه خب پس وا چه ترجیح اول می توانیم واقعا اینجا قبول کنیم یکی اگر رتبهش بالاتره این یه بقید ردش واقعا دشواره که بگیم آقا رتبه حکمش واقعا مقدمه منطور نتیجهش برمیگردیم به همون حکمه نتیجهش اگر مستقن قبول کردیم واقعا این مقصدش بالاتره مانعی هم نداشت همه اون ملاک های جهل رو واقعا فهمیدیم این نتیجه اینه که حکمه شدیدتره دوباره برمیگردیم پس معیار اصلی میشه ترجیح حکمی راه ترجیح حکمی چیه این که ببینیم مثلا رتبتن مقدمه خب اینجا اینجوری به نظر میرسه نسبت به اون رتبتن ببخشید اعلی نوعاً اینو مقدم کنیم اما اون اعلی نوعاً چی آقا این شما اثبات کن اعلی نوعاً بر چی مقدم بود دوستان اونو که نوشتن هفت کلمه هفت کلمه بگیم اعلان حکمان اعلان رتبتاً اعلی چهاروم که وسط اعمه قبل از اعم سه تا بعد از اعم سه تا حکم رتبه نو وسط اعمه بعد از اعم اکبر و قدر و اول و آکت و تحققم آقا به چه دلیل اگر اینها هم نوع بودند ایشون میگه اگه نو یکی مقدم بود اون مقدمه خب نو چی بود پس تو رتبه اگر از سنق ضروریات بود بر حاجیات مقدمه اگر حاجی بود بر تحسینیات مقدمه اگه یه طرف ضروری بود یه طرف تحسینی اون که به طریق اعلام مقدمه اگر یکی ضروری بود یکیش مکمل ضروری بود این هم خود ضروری مقدمه اگر یکیش نوعن بود اون یکی مکمل نوع بود حالا کتابهای مقاصد کلی برای اینا مثال میزنن حالا با ذوقیات و ظنّیات اهل سنت هم اینا همش گره خردا بس مستاقی که میگفتن برای اونجا چون اینقدر ذوقیات عجیب قریب نشان میدن بعضیاش هم من شما قبول کنیم. یا حداقل رد نکنید ولی اونجا خلاصه زن محوریت داره در تشخیص مستاق مستاق به اما حالا ضابطه رو کار درین اگر نوعن یکی بودن نوعن یکی بودن یعنی چی یعنی هر دو اگه ضروری بودند خب اینجا الان با معیارشان کار نداشته باشیم دوستانمون نقد کلی رو که بیفرمودن نقاط در خارج ساده سازینک و اینو معیار رو با همه رو بیام یه قدم ببینیم میشه یه کمی بریم جلو یا نمیشه. اگر هر دو از سنخ حفظ جان باشن هر دو حفظ جانه هر دو حفظ ماله الان من و شما چی کار میکنیم؟ اگر مال من در خطر قرار بگیره مال خودم یا مال دیگران اگر آدم ایثارگری باشم میگم آقا مال دیگران من مقدم میکنم اگر مال مال مثلا پنج نفر باشه بر مال خودم فرض کنی مساویم باشه میزان مال اگر میزان مال اینجا دیگه امکانش وجود داره هزار تومن من از بین بره یا هزار تومن شما سه نفر کدام رو مقدم میکنید اگر ایثار بس ایثار رو اخلاق نیاری ما وجوبش رو بگیم واقعا پول پول یه نفره مبلغش هم مساوی شما آیا وظیفه دارید که با اون که من از کردم این ها اصلا تحییق کنندی حکمه چون این مثلت سنجیا و در بیا به حکم میرسه. میگیم ما ابحام داریم که کدام حکمش زر وجوب داره کدامش عدم وجوبه ممکنه بگیم چون که به مثلت چند نفر برمیگرده ما یه ذره به وجدان ما نزدیک باشه ولی به شرطی که مثلا اون فول تضاهمهای دیگه نداشته باشه ولی تو جان الان هر دو هم نوان حفظ جانن هر دو حفظ آب روین. الان من وظیفه دارم آب روی خودم حفظ کنم یا آب روی دیگری اول اینجا یه شما رفتی سراخ اهم وسط از اعلان نوان اینجا یه مسئله جدی این در مقام نقد عرض میکنم. آقا شما وقتی میگی نوان میگید جان جان خودم یا جان دیگران میگید مال مال خودم در رتبه نوعی بین تزاهم تز... چند تزاهم برجسته میشه بگیم تزاهم خود و دیگران جان خود یا جان دیگره هر دو هم مسافیم اصلا بلکه مساوی نداره جان خودم جان شما من وظیفه دارم ایثار کار ندارم اون میشه اخلاق اما وظیفه اولیه من حفظ جان خودم و حفظ جان دیگرانه به مادر بگیم میگه آقا حفظ جان بچه ولی به فقیه بگیم میگه آقا الان این بچه در شکم مادر داره فوت میکنه خب اون هر دو قیرن اون یه بحث دیگه است اما الان خود مادر وظیفه داره حتیان از فرقی مجبوره به پرسه ولی ما هم الان میخواییم اون پاسوخش بدیم این میگه من خودم رو حفظ کنم یا بچم رو بچه ایم که روح درش دمیده شده میگه الان من میخوام از کوه بیفتم ما رفتیم کوه نوردی داریم میفتیم اگر این تلاب رو من ول کنم خودم زنده میمانم ولی اون بندی خودم میمیره قطع هم دارم که یکی از ما ناچاره این تنابه داره من خودم را کنم یا دیگری رو مال خودم و دیگران پس اینجا یه گیره اساسی این بود عدم تعیین تکلیف چون در نوع این مسئله جدی بود عدم تعیین تکلیف تضاهم خود و دیگران چه در مال چون هر دو ماله هر دو جان هر دو ارض هر دو حال دین جوریه. مثلا میگیم دین خودم عرض کنم دین اون یه سر اپام داره که یعنی چی دین خودم عرض کنم دین اون یه جوری خب اینم میتوانه یه چیز باشه بعضی مثلاقا شفاف عدم شفافیت در برخی مصادق خلاصه تضاهم نوعی اینم خودشی مشکلیه حفظ دین خود و حفظ دین دیگران بله خب اینجا الان پس اینم یه نقدی ولی اگر ما بخوایم بگیم که یکیش خب حالا اگر نوعا یکی بود این یه موردش بود که تضاهم خود و دیگران حالا فرض کنیم الان تضاهم من نیست تضاهم بین دیگران من دخیل نیستم پس خود اون یه مسئله است شاید من عرضم اینه که توی این قسمت احتمال ترجیح خود بر دیگران توسط فوقه ها باشه من از دارم خودم عفظ کنم مال خودم جان خودم به من چه اون میخواد بمیره بمیره باشه اگه من نمیرم اون رو نجات میدم ولی اگه یا من باید بمیرم یا اون خودمه منطقی اینجا بعضی مصادقی خاص داریم تضاممه تو بعضی تضاممه اگه مثلا جان من و جان پیامبر اونجا یه مقداری یه وچه ترجیحی داره خب یه جاهایی بعد خلاصه اگر در حالت عادی احتمال ترجیح خود بر دیگران در موارد معمولی ولی اگر موارد غیر معمولی باشه وجود وچه ترجیح در برخی از موارد اون برخی از موارد مال من مال پیامبره که میگه آقا من بسیار مال پیانبر رفز کنم مال خودم چیه اون دیگه دلیل داره پس زود هنوز نوبت به رسیدن به اهم نمیرسه پس نوبت به اون میار بعدی نوبت به اهم بودن بود اینجا انا یه خلایی شما پر نکردید در واقع عدم رفت خلا در رتبه نوعی اینم خود چلا یه نخت شد که دو مسیر داریم یه مسیر تظاهوم معمولی خود و دیگران که احتمالا فوقه خود رو ترجیح بدن مادر بر چشت رو ترجیح میده و خودش برمیکردی خب اما اونجایی که نو... خب آیا نوبت به ام بودن میرسه یا نه خب حالا از این نوبت به ام بودن میرسه مانه کجاست تظاهوم بین دیگرانه خب حالا اینجا یه نقطه باز اونجا هم وجود داره مثلا توی اگر پول من و پول دیگران مساوی باشه حالا جان یه چیزیه یا جان من یا جان دیگری مگر آدم خیلی خاصی باشن اما در مال اگر مال اون طرف زیاد باشه مال من کم باشه من اگر از بالای کوه یا کیسه من کیسه خودمو بعد بندازم یا کیسه دیگران تو قایق این داره می‌بینیم بعد اینجا سبو کنیم من یکی کیلو طلا دارم اومده خود یه دانه الماس داره ارزش اون بیشتره یا ارزش مال من خب من الان ترجیح بین مالی یعنی یه مقداری کمیت آیا تاثیر داره یا نه آیا من وظیفه دارم مال خودم را حفظ کنم ولی کم باشه خب اینجا الان سراغ بودن نمیره فرض بگیریم در ترجیح ترجیح بین خود و بگیم مال بین مال خود و مال دیگران مال یک نفر دیگه مال فرد دیگر کدام مرجهه آیا اکبر و قدرن ممکنه بگیم که نه صرف یه فرض که اکبر و قدرن باشه این اکبر و